<متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> خوب ریشیابی نشده است بله ماجرا از اونجا شروع می شود که دژ بزرگ سد بزرگ فرو می پاشد خلافت عثمانی با توتح های ها و با توتح یهود فرو می پاشد مشکل برای تمام جهان درست می شود کشورهای اسلامی مثل یه تسبیح که کنده بشود موارهاش چیگونه می پاشند یکی بعد از دیگری فرو پاشید هر جا حکومتی هر جا دولتی قده سرطانی رو اونجا بذرش را کاشتند ریشه بحران اونجا برمیگرده. اگر سردمداران دنیا اونهایی که اسلام رو محکوم میکنن اگر دنبال ریشه بحرانن برگردن به ریشه ها برگردن در سه دهه پیش و بیش از سه دهه قریب به چه سال هست سرزمین اسلامی افغانستان مورد تخت و تاز ارتش سرخ و سنگدل شوروی سابق قرار گرفت چه رشادت هایی که مردم افغان از خودشون نشون ندادن استقامت کردند، مقاومت کردن چندین سال مقاومت کردند. نهایتا این دشمن مهاجم رو راندن این دشمن بازگشت همین که ملت افغانستان خواست بر سرنوشت خودش حاکم بشود دوباره غرب به میدان اومد شرق شکست خورد بلوک شرق شکست خورد غرب برای امتحان به میدان اومد و تا امروز وجود داره عراق رو متهم کردن که سلاح‌های شیمیایی تولید می‌نماید و تهدیدی است برای جهان عراق رو و ایران نمودن نمودند حاکمان آمریکایی مسلط شدند ولی چیکار کردند جنگ داخلی رو آغاز کردند شیعه و سنی رو به جان هم انداختند متاسفانه گروه های نابخرد در خدمت نیروهای آمریکایی قرار گرفتند و بهترین انسان ها رو از بین بردند. اونقدر استاد دانشگاه، اونقدر مغز مفکر، اونقدر اندیشمن که در عراق ترور شد. چه مسلمان، چه غیر مسلمان، چه شیعه، چه سنی یکی یکی رو پیدا کردند. عوامل و وجود داشت یکی یکی رو پیدا کردن از خونه هاشون آدرس گرفتن تعقیبشون کردن بهترین انسان رو به شهادت رسوندن و کشتن مراکز رو و خاک یکسان کردن و تهنوز هم این شیوه ادامه داره و هنوز در عراق صلح به وجود نیومده نتیجه این که تمام این بحران ها تسلطه غرب هست و غرب به هیچ وجه و سردمدارانشون به هیچ وجه خیرخواه مسلمانان نیستند اینو باید ما بدانیم و اینو باید تبلیغ بنماییم این باید موشکافی کنیم غرب چیست یه حرکتی میخواد برای غرب شناسی سالهاست که شرق رو مورد مطالعه قرار دادن قضیه استشراق و خاور شناسی چندین دهه هست که توسط غربی ها انجام می گیرد علوم شرقی رو سرزمین های جغرافی های شرقی رو مطالعه کردند، قرآن رو، سنت رو، کتاب های لغت رو ادبیات رو، مردم رو، فرهنگشون رو بررسی کردند. ولی متاسفانه ما جز این که موضع دفاعی گرفتیم و صرفا پاسخ دادیم دست روی سرمون گذاشتیم اونها زدند و تهمت زدند افتراز بستند اکس عمل دیگری نشون ندادیم الان وقتشه دانشجویان عزیز علمای بزرگوار وقتش هست که غرب مفتزه شده است فرهنگش، تمدنش، اخلاقش، اقتصادش وقت اون رسیده که حرکت غرب شناسی فرهنگ غرب، فکر غرب، اصول غرب شناخته بشود دیدگاه غرب نسبت به انسان چیه؟ نسبت به جهان چیه؟ نسبت به ماده چی هست؟ تا برملا بشود، هم مسلمان ها بدونند و هم غربی ها بدونند که این راه نجات به دامان غرب افتادن نیست. غرب رو از مصادرش بگیریم، از منابعش بگیریم. امروز جهان ای شده است و بهتر میدانید که هر کس میتونه تو خونش نشسته باشه بهترین تقییقات رو انجام بدهد. کافیست بر چند زبان مسلط باشه. این وظیفه ما، اسلام رو درست معرفی بنماییم بله مسلمان صبری داره و صبرش اندازه‌ای داره یک حیوانی که عقل هم نداره زیاد تو سرش بکوبند بالاخره عکس العمل نشون میده تاکی مسلمان مینیشیند و تحمل میکند من بیاد یک واقعه ماجرایی که نقطه‌ای که شهید عبدالله عزام رحمه الله در یکی از سخنرانیهایش می گفت افتادم ایشون در جواب کسانی که بدون تحقیق مسلمانان رو کل جامعه اسلامی رو اسلام رو متهم به ارهابی بودن و تروریست بودن و تروریست پروراندن مینمودند ایشون در جوابشون یک ضرب المثلی رو بیان کرد میفرمود ببینید ما مسلمان ها در شرایط فعلی در شرایطی که دشمن دستش بلند هست قدرتمند هست میزند مسلط هست و ما در حال دفاع از خودمون هستیم مثالی بیان کرد خیلی جالب هست میگفت یک بره ای رو گوسفندی رو دیدید می سرش رو جدا کنند قصاب با خشونت تمام دست و پای این حیوان رو بسته است و پا رو روی گردنش می فشارد و چاقوی تیز رو هم روی گردنش گذاشته و میکشد با خشونت تا سر این حیوان رو از سن جدا بنماید حیوان دست و پا میزند روش فشار میاد دست و پا میزند خونی که از حلقومش در میاد لباس های این قصاب رو آلوده می نماید خشمگین می شود لگدی هم می زند عجب حیوان لباس های آلوده کرد لباس های مرا آلوده نمود خونین نمود خشمگین می شود ایشون می فرمود وضعیت ما مسلمان ها است کارد رو بر حلقوم ما گذاشتید و سر ما رو می‌خواهید از تن جدا بنمایید. به ناموس ما اهانت می‌نمایید. به ما ظلم می‌کنید. سرزمین ما رو می خواهید غصب بنمایید. باز هم منتظرید از شما تشکر بنماییم؟ و ما را متهم می‌کنید که مردمی فرهنگی هستند. ما دست و پا میزنیم، دست و پا زدنمون ترورستی مطرح می شود، بی فرهنگی و بی تمدنی مطرح می شود این ماجرای ما و ماجرای قدرت های حاکم بر دنیا سروران گرامی این بدانیم ما همون برای هستیم که زیر دست و پای قصاب قرار گرفتیم تا او چاقو رو نیندازد تا او مسیرش را درست انتخاب ننماید تا او پایبند به اصول اخلاقی و انسانی نباشه به هیچ وجه افراد افرادگرایی از دنیا برچیده نخواهد شد و تا زمانی که با این شیوه به ظلم و ستمشون ادامه میدهند مطمئن باشند که آب گواره از گولویشون پایین نخواهد رفت وقت من تمام شده بیشتر از این مزاحم نمیشم و آخر و دعوانا آن الحمدلله رب العالم. اهل از بین می و برایشون اجازه نفس کشیدن نمی اما اروپایی ها رو نگاه کنید بوس... مردم بوسنی بخاطر اسلام اسلام میخوان قیام نمودن چه فجایی رو به وجود آوردن تنها سربه وحشی عامل این فجایی نبودن سازمان ملل به عنوان سلیب سرخ به عنوان حامی و پشتیبان اونجا حضور داشت در حضور سربازان سازمان ملل و حقوق بشر سختترین جنایت ها علیه عقلیت مسلمان انجام گرفت.